آیا از ریزش دائمی مو و کچل رنج میبرید، آیا اندامتان شبیه گلابی است و از بد خود ناراحت هستید؟ آیا پوستی افتاده و لکوپیس دارید؟ آیا موهایتان مثل سیم ظرفشویی زبر و بد حالت است؟ آیا میخواهید در عرض یک هفته ده سانت قدتان بلندتر شود؟ آیا از ناتوانی جنسی و فک و فک و کلافه شده اید؟ دیگر نگران نباشید فقط با یک بار استفاده از کرم مخصوص و همه کاره دکتر بالتازار با تمام مشکلات خود یک بار برای همیشه خداحافظی کنید من همیشه تو زندگی مشکل نداشتم بارها از دستگاه های مختلفی مثل فکر استفاده کردم حتی جرایی کردم ولی کچکتر شد که بزرگتر نشد ولی الان که دارم هر روز دکتر بلتازر مصرف میکنم خودتون این بغل پاچه منو ببینید اینا هاش من کاملا راضیم. کرمه دکتر بالتازار، حاوی اصاره هل دانه های مروارید الیاف نانو کربون تکه های الوه ویرا آب هویج، جین سینگ و اصاره جلبک دریایی بوده و همه مشکلات شما را با هم برطرف میکند من تا قبل از آشنایی با کرم دکتر بالتزار قدم 134 سانت بود موامم زشت و بدحالت بود و توی مدرسه دوستام دوستم همیشه مزخرم میکردن و لونه کلاقی صدام میکردن ولی خب الان دو متر و چهارده سانت قد دارم و موامم دلتون نخواد شده مثل مای آیشواریاره واقعا دستشون در نکنه من خیلی راضیم. همهکاری دکتر بالتزار دارای تأییدیه از بزرگترین دانشگاه جهان بوده و همکنون بیش از یک میلیارد نفر از آن در سرتا سر اروپا و آمریکا استفاده می کنند چرم همهکاره دکتر بالتزار بهترین کره